عزیزان به دانش کوچکه کتاب مقدس خوش اومدین. ما امروز هم بررسی انجیل لغا رو ادامه خواهیم داد و من خیلی خوشحالم که شما تصمیم گرفتید دقایقی رو برای بررسی مهمترین کتاب دنیا کتاب مقدس اختصاص بدین و با ما همراه باشین. تا حالا توجه کردید که عیسی چقدر تعلیم درباره نحوی روی کرده ما به تعلیمش داره؟ بیایید؟ با معلممون همراه باشیم، با هم به بخشی از باب پنج گوش میکنیم که به ما میگه روی کرد ما به تعلیم ایسا چطور باید باشه. همچنین برای آنان این مثل را نقل فرمود. هیچکس از یک لباس نو تکهی پاره نمی کند تا با آن لباس کهنه ای را وصله کند. اگر چنین کند، هم آن لباس نو پاره می شود و هم وصله نو مناسب لباس کهنه نیست. همچنین هیچکس شراب تازه را در مشک های کهنه نمی ریزد. اگر بریزد، شراب تازه مشک ها را می ترکاند. شراب به هدر می رود و مشک نیز از بین خواهند رفت. آری، باید شراب تازه را در مشک های نوریخت. هیچکس پس از نوشیدن شراب کهنه شراب تازه نمی خواهد چون می گوید که شراب کهنه بهتر است. ایسا تعالیم زیادی داره که نحوه روی کرده به تعالیمش رو به ما می آموزه. مسئله برزگر او یکی از مثالهای کلاسیک در این مورد هست. در مسئله برزگر عیسی به ما میگه که چطور باید به کلام او واکنش نشون بدیم و جدیت نشان دادن واکنش درست ما نسبت به کلامش رو یادآوری میکنه. کاربرد این مسئله این هست. ملاحظه کنید که چطور به کلام او گوش میکنید. بسیاری از تعالیم ایسا به این موضوع اشاره میکنه که چطور باید به کلام او نزدیک بشیم و چطور باید به تعالیم او واکنش نشون بدیم تا حد اکثر بهره رو از تعالیم او ببریم این یکی از تعالیم مورد علاقه من هست عیسی به ما میگه که وقتی میخواید یک لباس کهنه رو وصله بزنید نباید از لباس تازه‌ای به اون وصله بزنید تمام خیاط‌ها میدونند که پارچه تازه پارچه کهن رو خواهد کشید و پارگی اول بزرگتر خواهد شد چیزی که عیسی اینجا میگه اینه که تعالیم او تعالیم رهبران مذهبی رو در هم خواهد دیگ رهبران مذهبی رو کرده خاص خودشون رو به کلام خدا دارن ما اینو قبلا دیدیم مخصوصا در انجیل متا در موعظه سرکو کو عیسی داشت میگفت تعالیم من مانند رهبران مذهبی نخواهد بود چیزی که من به شما تعلیم میدم وسیله تازه‌ایه که نمیتونید اونو به لباس کهنه بدوزید در راستای همون تعلیم ایسا مثالی میزنه که برای آمه مردم بیشتر قابل فهم هست مثالی از زندگی روزمره مردمی که برای اولین بار تعالیم او رو میشنوند مردم میدونستند که نباید هرگز شراب عمل نیامده و تازه رو در مشک کهنه ریخت در اون ایام اونها خودشون شرابهاشون رو میساختند و در مشک ها میریختند اونا همه میدونستند که عیسی داره از چی حرف میزنه اگر شما شراب تازه رو که هنوز به عمل نیومده در مشکی کهنه بریزید شراب مشک کهنه رو خواهد ترکند. چون فشاری از درون به مشک کهنه وارد خواهد شد و اون مشک کهنه توان مقاومت در برابر این فشار رو نداره فشار اونقدر ادامه خواهد داشت تا مشک منفجر بشه عیسی به اونها یادآوری میکنه که شراب تازه و به عمل نیومده باید در مشک های نریخته بشه تا وقتی که شراب تخمیر میشه و میرسه و به مشک فشار میاره اون مشک بتونه در مقابل فشار تخمیر شراب مقاومت کنه تا هم شراب و هم مشک محفوظ بمونن. سالها قبل من عضو گروه شبانی بودم که قرار گذاشتیم با یه روانشناس و کارمند یک مرکز رواندرمانی ملاقات کنیم. ما این قرار ملاقات رو گذاشتیم چون اون روانشناس میخواست از خادمین برای کلینیک جدید و بگیره بعد از چندین هفته کلینیک پر از مشتری بود و او دیگر به راهنمایی بیشتری نیاز نداشت اما ما قرار گذاشته بودیم که تا یک سال هفته یک بار از اونجا دیدن کنیم هر هفته ما بحث می کردیم که چه نقط نظرات مشترک و چه اختلاف نظرهایی در مورد مشکلات اون مردم داریم معمولا 6 تا 8 شبان و یک روانکاف و چندین روانشناس و مددکار در اون حاضر یادم گاهی اوقات بین خادمین و کارکنان کلینیک برخوردهایی پیش می اومد که جو جلسه رو بسیار متشنج میکرد. یه روز بعد از اینکه ساعتها ها طول کشیده بود، تصمیم گرفتیم که برای شام بیرون بریم. وقتی سر میز نشستیم یکی از روانشناسان که به نظر می رسید تمام بعد از ظهر رو از دست من عصبانی بود، به من گفت شما واعظین مردم رو مریض میکنید. من گفتم لطفاً بیشتر توضیح بدید. او گفت باشه توضیح میدم و اینطور ادامه داد کسانی که میان ما رو ببینن کافر نیستن اونا به کلیسه های شما میرند و به موعظهاتون گوش میدن اونا اونجا میشینن و سرشون رو به علامت تایید تکون میدن اما باقی روزای هفته روزای هفتر اونطور که شما موعظه کردید زندگی نمیکنن شما به اونا میگید همسایتون رو محبت کنید دشمنتون رو محبت کنید و غیره و اونا اونجا میشینن لبخند میزنن و سرشون رو تکون میدن چنانکه که انگار همه اون رو باور دارن اما وقتی بیرون میرن یک روز از هفته را همونطور که تعلیم دادید زندگی نمی کنن. اونا واقعا به تمام اون چیزا باور نمی کنن تنها کاری که شما واعظین میکنید اینه که تناقضاتی در ذهن اونها به وجود میارید. شما به اونها چیزهای متفاوتی از زندگی روزمره شون میگید که بر روی هم انباشته میشه و روزی فرو میریزه من در جواب او گفتم آیا قصد دارید یک چنین چیزی به من بگید و شروع کردم به گفتن این مسئله کوچک عیسی در مورد شراب تازه و مشک کهنه. گفتم گمون می کنم چیزی که عیسی اینجا داره میگه اینه. قبل از اینکه بخواید به کلام من نزدیک بشید و اون رو وارد افکارتون کنید، ذهنتون رو برای این آماده کنید. کلام من در شما فشار ایجاد خواهد کرد. کلام من شراب تازه هست. وقتی کلام من رو وارد ذهن تون حقیقت كلام من در ذهن شما جا خواهد گرفت و بر شما فشار خواهد آورد اگه نتونید در مقابل فشار ناشی از تعالیم من بیارید این تعالیم میتونه مغز شما رو منفجر کنه به او گفتم آیا چیزی که شما قصد دارید به من بگید یه همچی چیزی نیست او تعجب میکرد و پرسید آیا واقعا این توی کتاب مقدس هست من کتاب مقدسم رو به او دادم و این آیات رو نشونش دادم او چنان به این آیات نگاه میکرد که میشد فهمید که باور نمیکنه که این آیات توی کتاب مقدس باشه. او گفت بله، این دقیقا همون چیزی که من سعی دارم به شما بگم. بهش گفتم چیزی که شما سعی داری به من بگی، عیسی قبلا به ما تعلیم داده. او گفت آیا وقتی مردم به کلیسای شما میان، این حقیقت رو به اونها میگید؟ من به او اطمینان دادم که نهایت سعیم رو میکنم تا این برای مردم باز بشه. پس میخوام این برای شما هم که در این دوره با ما همراه هستید باز بشه. من نمیخوام مردم مریض بشن نمیخوام مرتکب چیزی بشم که روانشناسان منو به اون متهم میکنن قصدم این نیست که تمام روز تعالیم عیسی رو به شما بدم و شما رو مجبور کنم که اونها رو بپذیرید در حالی که طاقت تحمل این فشارها رو ندارید عیسی در این مثل به ما هشدار میده اگه این کارو بکنید دیر یا زود تعالیم من مغز شما رو منفجر میکنه بنابراین شما نیاز به مشکی تازه دارید تولدی تازه شما باید از نو متولد بشید تا بتونید تعالیم عیسی را بپذیرید این اساس چیزیه که عیسی در مسئله شراب و مشک عنوان میکنه در مسئله برزگر کاربودی که اینجا مد نظر هست اینه که چطور به کلام گوش میکنید قبل از اینکه به کلام خدا نزدیک بشید ذهنتون را آماده بکنید که بتونید در مقابل فشارهایی که کلام خدا بر شما وارد خواهد کرد طاقت بیارید به عبارت دیگه با این طرز فکر به کلام خدا نزدیک بشید که قصد دارید از کلام خدا اطاعت کنید. شما کلام خدا رو به مورد اجرا خواهید گذاشت و فقط حقایق کلام خدا رو در ذهنتون انباشته نخواهید کرد. این چیزیه که مرد نظر عیسی هست. من این جمله کوچک آخر رو خیلی دوست دارم. عیسی گفته کسی پس از نوشیدن شراب کهنه خواهان شراب تازه نیست. زیرا میگوید شراب کهنه بهتر است. تعلیم دیگری که عیسی به ما نحوه رو کرد به تعالیمش را آموزش میده در باب هفت لغا هست. او میپرسه پس مردم این نسل را به چه تشبیه کنم؟ به چه میمانند؟ بعد عیسی به سؤال خودش پاسخ میده. اونها به کودکانی میمانند که در بازار مینشینند. در اون ایام بچه ها در بازار مینشستند و بازی های تخیلی میکردند. بچه ها هنوز هم همین کار رو میکنند. یه وقت من فکر می کردم بچه های من مشکلی دارند چون اونا هم اغلب بازی های تخیلی می کردند بعدها فهمیدم که اونا هم مثل بقیه بچه ها هستند بچه ها معمولا بازی های خاص خودشون و تخیلات خودشون رو دارند تصور کنید که بچه ها در بازارهای شلوغ دارند بازی تشی جنازه می کنن. اونا سعی میکنن جلوی کسبه بازار رو که سرشون بسیار شلوغه بگیرن و به اونها بگند بیستید و همراه ما گریه کنند ما داریم بازی تشید جنازه می کنیم. بچه ها مراسم تشید جنازه رو دیدن. بنابراین از چیزی که دیدن تقلید می کنند. بیستید و با ما گریه کنید. امروز ما بازی تشید جنازه می کنیم. شاید روز دیگه بچه ها بگن او امروز بازی عروسی داریم. پس شاد باشید. خب این بازاریا ها که خیلی مشغول هستند هرگز درگیر بازی بچه ها نخواهند شد. برحال شما می‌بینید چیزی که عیسی در لغا باب 7 آیات 28 تا 35 میگه چیه؟ عیسی داشت از تعالیم خودش و تعالیم یحیای تعمیددهنده حرف میزد. عیسی داشت میگفت یحیای تعمیددهنده و من نیومدیم که مشغول بازی‌های کودکانه شما بشیم. عیسی گفته زیرا یحیای تعمیددهنده آمد که نه نان میخورد و نه شراب مینوشید. گفتید دیو دارد. پسر انسان آمد که می‌خورد و می‌نوشید. میگوید مردی شکمباره و میگسار دوست خراجگیران و گناهکاران چیزی که عیسی داشت میگفت این بود من با یک حالت به این دنیا آمدم، از زندگی لذت میبرم بعضی از ترجمه ها این کلمه رو به مرد شاد ترجمه کردند یحیای تعمید دهنده آمد که بسیار سختگیر بود و شما میگید یحیا دیو داره و منو شکمباره و میگسار خطاب می کنید. اما ببینید شما مثل این کودکانی هستید که در بازار می نشینن. من و یحیای تعمید دهنده درگیر های شما نخواهیم شد. شما از یحیای تعمید دهنده می‌خواستید که شاد باشه و در بازی عروسی شرکت کنه. او نیومده تا در بازی شما شرکت کنه. او اومده تا کاری رو بکنه که خدا فرمان داده بود انجام بده. از من میخواید که در بازی تشییع جنازه شرکت کنم. من مرد شادی رو به تصویر می کشم و شما میخواید من غمگین و سختگیر باشم. من نیومدم در بازیهای کودکانه شما شریک بشم. میبینید چه جمله تند و سختی هست؟ میبینید عیسی با چه تندی با اونها صحبت میکنه؟ شخصی کتابی نوشته با عنوان سخنان تند عیسی، بسیاری از سخنان عیسی تند هستند. در انجیل لوقا و همینطور در انجیل متا شما این گفتگوهای تند بین عیسی و رهبران مذهبی رو میبینید. عیسی حرفهای شدید و لحنی به اونها زده، مثل همین مسئله کودکان در بازار. در لوقا باب هفت شما مسئله بزرگ دیگری از عیسی میبینید. این در میهمانی نهاری که عیسی با فریسیان داشت ثبت شده. یک فریسی او را به نهار دعوت کرده و اسم فریسی شمعون بود. کاملا مشخصه که انگیزه فریسی از دعوت عیسی برای نهار به دامنداختن او بوده. بیشتر گفتگوهای رهبران مذهبی با عیسی به همین منظور بوده. در حینی که اونها نهار میخوردند اینطور آمده. در آن شهر زنی زندگی میکرد که رفتارش برخلاف اخلاق بود. چون او شنید که عیسی در خانه آن فریسی غذا میخورد خورد در گلابدانی سنگی روغنی معتر آورد پشت سر عیسی و کنار پاهای او قرار گرفت و گریه می کرد. چون اشکهایش پاهای عیسی را تر کرد آنها را با گیسوان خود خشک نمود و پاهای عیسی را می و با آنها روغن می مالید. وقتی میزبان یعنی آن فریسی این را دید پیش خود گفت اگر این مرد واقعا پیامبر بود، می دانست این زنی که او را لمس می کند کیست و چطور زنیست او یک زن بدکاره است. عیسی میدونست که شمعون چه فکری داره؟ عیسی میگه شمعون می خوام داستان کوتاهی بهت بگم از مردی که از دو نفر طلب داشت. یکی به او پنج هزار دلار بهده کار بود و دیگری 500 دلار به او بده کار بود. او بدهی هر دو رو بخشید وقتی این کارو کرد به نظر تو یک از اون دو مرد باید بیشتر او رو دوست داشته باشه. فریسی جواب داد من فکر می کنم اونی که بدهی بیشتری داشته. ایسا جواب داد کاملا درسته. بعد ایسا این سؤال رو پرسید. او گفت شم اون. این زن رو می بینی؟ ایسا کلمه یونانی به کار می بره و میگه آیا واقعا این زن رو می بینی؟ وقتی به این زن نگاه می کنی چی می بینی؟ بذار بهت بگم که واقعا جریان چیه. وقتی من وارد خانه تو شدم تو حتی برای من آب نیاوردی که پاهام بشورم. اما او پاهای منو با عشقهای خودش شست و اونها رو با موهاش خوش کرد تو به سر من روغن نزدی اما این زن پاهای منو با روغن معطر تطهین کرد کاربرد چیزی که عیسی در مورد این زن میگه نحوه رب دادن او به این مثل هست گناهان او که بسیار بوده بخشیده شده به این دلیل او منو بیشتر دوست داره و البته کاربرد اینه کسانی که در نظر خودشون بخشش کمتری دریافت کردند کمتر هم محبت میکنند و کسانی که در نظر خودشون بیشتر بخشیده شدن محبت بیشتری هم نسبت به خدا دارن. او قبل از اینکه زن اونجا رو ترک کنه رو به او میکنه و میگه ایمانت تو رو نجات داد. او به خاطر محبت زیادش نجات پیدا نکرد. او چون نجاتی یافته بود بیشتر محبت کرد. واضحه که او قبلا ایثار رو ملاقات کرده بود و زندگی او تغییر کرده بود. او از نوع متولد شده بود. فکرش رو بکنید: مفهوم این برای زنی مثل او چی بوده؟ به این دلیل او کوزه اطرش رو به اونجا میاره و در حالی که ایسا رو میپرستیده بر روی پاهاش میریزه اما چیزی که ایسا در اون میهمانی نهار میگه اینه شمعون گناهکار واقعی بر سر این سفره اون زن نیست گناهکار واقعی اینجا فریسی به نام شمعون هست اگر ایسا میپرسید گناهکار واقعی کیه بلند شه؟ گناهکار واقعی اون زن نبود که قبلا گناهکار بوده و حالا بخشیده شده. و در نظر خدا بی گناه است بلکه گناهکار واقعی فریسی به نام شمعون بود که باید بلند میشد من واقعا نمیخوام این رو مخصوصا برای جوانان تدایی کنم که بهتر گناهان بزرگتری مرتکب بشن تا بتونن خدا رو بیشتر محبت کنن گناه اصلا چیز خوبی نیست اما این واقعیتیه که اعتراف آگوستین قدیس رو به شما یادآوری میکنه که وقتی کسی گناه بزرگتری داشته و واقعا تبدیل یافته همواره محبت بیشتری خواهد داشت. تا کسانی که فکر میکنند، گناه چندانی نداشتند که مورد بخشش قرار بگیرد. همونطور که وقتی گناهش هم اون بخشیده میشد او خودش رو میدید که گناه خیلی کوچیکی داشته و خودش رو گناهکار بزرگی نمی دونسته. اما اون زن خودش رو گناهکار بزرگی می دونست. هرطور شما خودتون رو ببینید، دیگران رو همونطور خواهید دید. ایسا این رو در موعظه سر کوه گفته. و در این مسئله کوچک هم عنوان میکنه می میپرسم آیا شما گناهانتون رو از منظر خدا میبینید خبر خوشی خوشینه که خدا گناهان شما رو فراموش میکنه چون که یگان پسر خدا به خاطر گناهان شما مرد اما آیا شما گناهانتون رو اونقدر بزرگ میدونید که بخشیده شدن این گناهان بزرگ باعث بشه محبت بیشتری نسبت به خدا داشته باشید این چیزی که ضمن ادامه بررسی انجیل لغا، در حالی که به بعضی از متنهایی که در متا نبوده نگاه میکنیم به اون فکر خواهیم کرد من میخوام واقعی رو در باب هشت بررسی کنیم که شما خواهید دید که صبوری یکی از اولویتهای عیسی هست با این همه تقاضاهایی که از ایسا میشه آیا تا حالا فکر کردید که او چطور اولویت هاش رو تعییم میکرده؟ چه کسی براش اول بوده؟ چه کسی دوم؟ او باید از کار کردن با خیلی ها کرده. این واقعه در لغا باب هشت بیطرفی او و همینطور بعضی از اولویتهای او رو به ما نشون میده. مردی بود که رهبر یک کنیسه بود. او شخص واقعا مهمی هست. اسم او یایروس هست. یایروس دختر کچک دوازده ساله ای داشت که بیمار و در حال احتزار بود. او نزد عیسی میاد و از عیسی میخواد که برای دخترش شفاعت کنه. در حالی که ایسا با یایروس به طرف خانهش میرفت جمعیتی به دنبال اونها رو افتاده بودند که در بین اون جمعیت زنی بود که از خونریزی مزمنی رنج می‌برد در کتاب لاویان گفته شده که زنی که تحت این شرایط هست نباید کسی را لمس بکنه و عملاً چنین زنی از جامعه جدا میشه اما او ایمان داره که تنها امید او برای بهبودی عیسی هست. پس در حالی که عیسی با این مرد مهم راه میرفت زن خودش رو به او میرسونه و دامن ردای او را لمس میکنه ایسا میسته است و میپرسه چه کسی مرا لمس کرد رسولان میگن تمام جمعیت تو رو لمس میکنند منظورت چیه که میگی کی منو لمس کرد اما منظور عیسی چیزی عمیق تر از این بود عیسی گفت کسی عمدن مرا لمس کرد من احساس کردم که قدرت شفا بخش از من جاری شد چه کسی مرا لمس کرد حالا فکر میکنید اون نمیدونست کی او رو لمس کرده البته که میدونست او میخواست این زن که ایمان داره اعتراف کنه که عمدن او رو لمس کرده چون به این ایمان داشته و این ایمان او بوده که او رو شفا داده و اون زن بالاخره اعتراف میکنه او جلو میاد و اعتراف میکنه من تو رو لمس کردم عیسی زن رو شفا میده و به او میگه که ایمانش او رو شفا داده بعد به طرف یایروس برمیگرده در همین حین قاصدی میاد و به یایروس میگه که دخترش مرده و لازم نیست که دیگه به استاد زحمت بدی عیسی برمیگرده و به او میگه نترس به من اعتماد کن اونها به خانه این مرد میرن و عیسی این دختر رو از مرگ زنده میکنه این هم یکی از معجزات بزرگ انجیل هست من فکر میکنم این داستان تکان هست چون به ما بیطرفی ایسا عیسی رو نشون میده و چیزی در مورد اولویت های او به ما نشون میده چرا او اول زن رو شفا داد و اجازه داد دختر اون مرد بمیره یه لحظه بهش فکر کنید نیاز کی بیشتر بود؟ جی کمپل مورگان این رو اینطوری بیان کرده. این مرد دوازده سال تابش آفتاب رو داشته چون دختری دوازده ساله داشته. این زن چه چیزی داشته؟ فقط دوازده سال تاریکی و بیماری؟ من فکر میکنم همونطور که عیسی این موقعیت خاص رو میبینه نیاز زن نیاز شدیدتری بوده. انجیل لغا پر از داستانهای زیبایی هست که شبیه داستان این زنی هست که ایمان داشت اگر دامن ردای عیسی رو لمس بکنه شفا خواهد یافت. وقتی به پایان باب ده لغا می رسید، به یکی از متنهای زیبای مورد علاقه من می رسید. آخرینایی باب ده لغا ما رو با دو زن آشنا می کنه که ایسا اونها رو خیلی دوست داشت. اونها خواهر بودن و اسمشون مریم و مارتا بود. ما در انجیل یوحنا هم با اونها ملاقات خواهیم کرد. از اون جایی که سر سر انجیل لغا بوده انسانی عیسی رو به ما نشون میده در این مثل هم از برخورد بین این دو خواهر با ما صحبت میکنه عیسی به خانه اونها در بیت انیا میره که مرتبا در طول خدمتش از این خانه دیدار میکرده. وقتی عیسی به معبد در اورشلیم میره و اون گفتگوی خسمانه رو با رهبران مذهبی انجام میده او احتمالاً خیلی خسته بوده او به خانه مریم و مارتا و برادرشون ایلازار در بیت عنیا میاد که در هومه اورشلیم بوده عیسی در خونه اونها استراحت میکنه و سر حال میاد. این آیات آخر لغا ده احتمالاً شرح اولین ملاقات عیسی با این دو خواهر هست. وقتی این دو خواهر میفهمند که عیسی داره به خونه اونها میاد، واکنش اونها کاملاً متفاوت هست. مارتا اینطور به قضیه نگاه میکنه. عیسی داره میاد که توی خانه ما نهار بخوره. مهمترین چیز اینه که همه چی عالی و کامل و مناسب باشه. او بیشتر به این چیزها عمق میده. خواهر او مریم واکنشی کاملا متفاوت داره مریم اینطور به قضیه نگاه میکنه امانوئیل خدا با ماست کلام زنده خدا جسم شد و در بین ما زندگی میکنه و او امروز به خانه ما میاد مهمترین چیز اینه که نزد پاهای او بشینم و کلام او رو بشنوم پس مریم رو میبینید که در اتاق نزد پاهای عیسی نشسته به کلام او گوش میکنه و از مطالعه کلام خدا لذت میبره و مارتا رو میبینید که توی آشپزخونه است تقلا میکنه و در حال آماده کردن غذا است خجالتی نیست او میاد و وارد جلسه تعلیم ایسا میشه و شروع میکنه به غور زدن خداوندا هیچ در فکر این نیستی که خواهر من مرا رها کرده تا دست تنها پذیرایی کنم آخر به او بفرما بیاید به من کمک کند تا حالا بین دو زنگیر افتادید من با شش خواهر بزرگ شدم خیلی وقتا اتفاق افتاده که من بین دو نفر از اونا گیر افتادم و فکر می کنم به این دلیل حکمت سلیمان رو کسب کردم. من طرف کسی رو نگرفتم. من همیشه قاطعیت خداوند رو اینجا تحسین میکنم. او سعی نکرد که از این قضیه خودش رو کنار بکشه تا اونها خودشون مسئله رو حل کنند. او طرف مریم رو میگیره، به مارتا نگاه میکنه. البته او مارتا رو هم به اندازه مریم دوست داشته. اما او به مارتا نگاه میکنه و میگه ای مارتا تو برای چیزهای زیادی دلواپس و ناراحت هستی اما فقط یک چیز لازم است آنچه مریم اختیار کرده از همه بهتر است و از او گرفته نخواهد شد به لحاظ کاربردی این دو زن نماد کسانی هستند که در زندگی کلیساهای امروزه خیلی مهم هستند ما در کلیساهای امروزی این دو تیپ افراد رو داریم ما مریم ها و مارتا ها داریم برخی ها مریم رو اینطوری خلاصه می کنند افرادی که افکاری آسمانی دارند و به لحاظ زمینی چندان خوب نیستند و بعد گاهی مریم به مارتا نگاه میکنه و میگه بعضی از آدمها خیلی زمینی فکر میکنن و به لحاظ آسمانی چندان خوب نیستن پس هر دوی این شخصیت ها رو در کلیساها داریم در کتاب اعمال میخونیم که وقتی کلیساها گسترش پیدا میکردند هم مریم ها و هم مارتا ها مورد نیاز بودند در اعمال شش ما میبینیم که رسولان مسئولیت های اجرایی زیادی داشتند و اونا تصمیم مهم میگرفتند اونا مردم رو جمع کردند. و کسانی رو که کلیساهای امروزی به اونها شماس میگند انتخاب کردند. رسولانی که مثل مریم بودن کسانی که مثل شبان بودند به مارتاها گفتند شما مشغول این کارها بشید و ما خودمون رو وقت به دعا و خدمت به کلام خدا خواهیم کرد به عبارت دیگه مریم ها گفتند ما مریم خواهیم بود و شما مارتا باشید شما در جایگاه خودتون بیستید و ما هم در جایگاه خودمون هنوز هم این تیپ افراد رو در کلیساهامون داریم. کسانی رو داریم که اساساً شبان هستن. غالباً چنین افرادی رویاهایی از خدا گیرند و به این دلیل اون رویا رو و کلام رو موعظه کنند و هاشون هم تحقق پیدا می‌کنه. طولی نمیکشه که نیاز به مارتاها حس میشه چون که شما نیاز به مدیران و مجریان خواهید داشت. وقتی مارتاها وارد صحنه میشن، اونها معمولاً سازماندهی می‌کنند، تجزیه تحلیل می‌کنند. نمایندگی می نظارت می کنند و تلاش می کنن. به عبارت دیگه اونها مدیریت می کنند. مریم ها باید به مارتها احترام بذارند و مارتها به مریم ها چون که هر دو در کلیسا مورد نیاز هستند. اینطور نیست که یا این باشه یا اون به هر دوی اونها نیاز هست خداوند هر دو خواهر و خدمت اونها رو دوست داره هر دو الگوی روحانی بسیار مهمی هستند. وقتی افرادی از نوع مریم خدمت شبانی می کنند و افرادی مثل مارتا ها نیاز دارند مریمها ها باید از عطیه‌ای که خدا به کسانی مثل مارتا برای مدیریت داده قدردانی کنند اگر کسانی مثل مارتا ها نباشند مریمها ها چیزی برای خوردن نخواهند داشت مارتا ها هم باید بدونند که اگر مریمهایی هایی وجود نداشته باشند دیگه جایی برای مدیریت و سازماندهی اونها وجود نخواهد داشت من فکر می کنم متاسفانه غالبا این دو تیپ افراد در احترام گذاشتن به همدیگه دچار مشکل میشن. اونا باید به همدیگه احترام بذارن و خدا رو به خاطر هم شکر کنند. گاهی مریم زخم نداره چون که او فقط حامل هست. او زخمهاش رو به مارتا میده. گاهی مریم آرامش داره چون که مارتا آرامش داره. به طور خلاصه میپرسم آیا مریم باید در شستن ظروف‌ها به مارتا کمک کنه؟ من فکر میکنم عیسی گفت نه، نه. مریم کسی نیست که باید توی آشپزخونه کار کنه او نباید عتیه شبانیش رو رها کنه این عتیه روحانی هست که خدا به او داده آیا باید مرتا آشپزخونه رو ترک کنه و به کلاس کتاب مقدس بیاد باز هم فکر میکنم بنا به گفته عیسی جوابش نه هست. هر دو تیپ عطایا در کلیسا نیاز هست مسائل هایی در لغا باب 18 هست همینطور در لغا باب 11 که بر چیزی تاکید داره که امروزه به اونها مزاحم دعا می مهمه که این تعالیم کتاب مقدس رو درک کنیم چون تأکیدیه که ایسا کرده. در لغا باب 11 عیسی تعلیمی میده که وقتی عیسی زمان طولانی رو صرف دعا کرده و حالا رسولان نزد او میاند و میگن خداونده همونطور که به شاگردان خود یاد داده است تو هم دعا کردن رو به ما یاد بده. و میگن خدایا چه چیزی در مورد دعا هست که این همه اون رو مهم کرده و تو وقت زیادی برای اون صرف میکنی؟ به ما هم بگو تا بدونیم و ایسا در پاسخ میگه فرض کنید که یکی از شما دوستی داشته باشه و نیم شب پیش آن دوست بره و بگه ای دوست سه قرص نان به من قرض بده یکی از دوستانم که در سفر بود به خانه من وارد شده است و چیزی ندارم پیش او بگذارم و او از داخل جواب بدهد مزاحم من نشو، حالا در قفل شده و من و بچه هام به خواب رفته ایم و نمیتوانم برخیزم تا چیزی به تو بدهم بدانید که حتی اگر از روی دوستی برنخی زد و چیزی به او ندهد، اما سرانجام سماجت او او را وادار خواهد کرد که برخی زد و هرچی دوستش احتیاج دارد به او بدهد. در اون ایام تمام خانواده از یک رخت خواب استفاده می کردن. وقتی همه به رختخواب میرفتند اگر کسی در میزد، این باعث می شد که ناراحت بشن. چون بلند شدن یک نفر همه را به زحمت می تمامی مثالهای عیسی از زندگی روزمره و تجربیات مردم اون دوره گرفته شده. بنابراین وقتی یه نفر میگفت نه نمیتونم بیام درو باز کنم من با فرزندانم خوابیدم اونها درک میکردن. در این مثل ایسا چنین چیزی میگه؟ فقط به خاطر اینکه او دوست شماست ممکنه بلند نشه و رخت خوابش رو به هم نزنه. اما اگر به در زدن ادامه بدید، مثل وقتی که بچه گریه میکنه بالاخره بلند میشه. به این اصرار گفته شده واژه اصرار غالبا در تعالیم عیسی به چشم میخوره. او گفته ما باید در خواستن اصرار کنیم در جستن اصرار کنیم و در کوبیدن اصرار کنیم ما باید در دعا استقامت کنیم این چیزیه که در این تعلیم و تمثیل عیسی می‌بینیم مسئله کوچکی در لغا 17 هست اونجا که عیسی میگه هرگاه تمام دستورهایی که به شما داده شده به جا آورید بگویید ما غلامانی بیش نیستیم فقط وظیفه خود رو انجام داده ایم. در این مسئله کوچک در باب 17 آیه 7 تا 10 ایسا میگه وقتی که استقامت کنید وقتی پای مردی داشته باشید و اگه خدا رو شاید به مدت چهل سال هم خدمت کنید نباید طوری عمل کنید که کار خارقلادهی انجام دادید اگر شما خدا رو پنجاه سال هم خدمت بکنید نباید فکر کنید که کار خارقلادهی انجام دادید این واقعا طبیعیه تمام چیزی که باید بگی دینه. ما غلامانی بیش نیستیم فقط وظیفه خود را انجام داده ایم. عیسی در آیه 46 باب شش لغا از اونها می پرسه چرا پیوسته به من خداوندا خداوندا میگویید ولی آن چرا به شما میگویم انجام نمیدهید زندگی مسیحی ما طبعاً باید اینطور باشه که در خدمت به خداوند ایستادگی کنیم مثل مریم همیشه باید نزد پاهای او او را خدمت کنیم کلامش رو بشنویم، اراده‌اش رو بپذیریم و او رو بپرستیم. خب دوستان وقت ما رو به پایان هست، اما چند کار کاربرد در این متن برای زندگی شخصی شما وجود داره. خوشحالم که شما خداوند عیسی مسیح رو به عنوان خداوند خودتون پذیرفتی. حالا آیا برای چیزی دعا می کنید؟ خدا میگه استقامت کنید، به طلبیدن ادامه بدید، به جستجو کردن ادامه بدید و به کوبیدن در کنار پاهای عیسی ادامه بدید. دانش عزیز کلام خدا متشکریم که وفادارانه با ما در بررسی کتاب مقدس همراه هستید. متشکریم که ماننده مریم وقتتون رو نزد پاهای عیسی برای آموختن از خداوندمون صرف میکنید. هنوزم مطالب زیادی هست که باید از خداوندمون بیاموزیم. پس ترتیبی بدید در جلسات بعد با ما همراه باشید و از زودسانتون دعوت کنید در این دوره با ما همراه باشند. باشن. دعا خدا به شما برکت بده و شما رو برای بشارت انجیلش به کار بگیره امیدواریم تا برنامه بعدی فیض و آرامش خداوندمون عیسی مسیح بر شما قرار بگیره و شما رو تشویق کنه در پیروزی گام بردارید